اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آمین به نام خداوند بخشنده بخشایشگر ها میم کل کتاب المبین سوگند به این کتاب روشنگر اینا انزلاه فی لیلت ام انا في انا که ما آن را در شبیه پربرکت نازل کردیم ما هموار انظار کننده بوده در آن شب، هر امری بر اساس حکمت الهی تدبیر و جدا می گردد من من اینا کننا مرسلین آری نزول قرآن فرمانی بود از سوی ما ما محمد را فرستادیم رحمت رحمت من ربك إنه هو السميع العليم. اینها همه به خاطر رحمتی است از سوی پروردگارت که شنونده و داناست رب السماوات والارض وما بينهما كنتم موقنین همان پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه در میان آنهاست اگر اهل یقین هستید لا اله الا هو و ربكم و رب هیچ معبودی جز او نیست زنده می کند و می میمیراند او پروردگار شما و پروردگار پدران نخستین شماست ولی آنها در شکند و با حقایق بازی میکنند پس منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری پدید آورد که همه مردم را فرا میگیرد این عذاب دردناکی است رب عنا العذاب مؤمنون میگویند پروردگارا عذاب را از ما برطرف کن که ایمان می آوریم انَّ لَهُمُ الذِّكْرَ وَقَدْ جَاءَ أَمْرَسُولٌ مُبِينٌ چگونه و از کجا متذکر میشوند با اینکه رسول روشنگر به سراغشان آمد ثم تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَجْنُون سپس از او رویگردان شدند و گفتند او تعلیم ای دیوانه است این لکاشف العذاب قلیلا، انكم عائدون ما عذاب را کمی برطرف میسازیم، ولی باز به کارهای خود باز می‌گردید یوم نبطش البطشت الكبراء ان منتقمون ما از آنها انتقام میگیریم در آن روز که آنها را با قدرت خواهیم گرفت. آری ما انتقام گیرنده ایم. و لقد فتننا قبلهم قوم فرعون وجاءهم, وجاءهم رسول کریم ما پیش از اینها قوم فرعون را آزمودیم. و رسول بزرگواری به سراغشان آمد ان الی عباد الله اینی لكم رسول امین و به آنان گفت امور بندگان خدا را به من واگذارید که من فرستاده امینی برای شما هستم والا تعلو علی الله و در برابر خداوند تکبر نبرزید که من برای شما دلیل روشنی آورده ام و من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه میبرم از این که مرا متهم کنید. و, این لم تؤمنوا و اگر به من ایمان نمی آورید از من کنار گیری کنید و مانع ایمان آوردن مردم نشوید فدعا ربه ان لها مجرمون آنها هیچ یک از این پندها را نپذیرفتند و موسا به پیشگاه پروردگارش عرضه داشت اینها قومی مجرمند فاسر بعباد لیلا انکم متبعون به او دستور داده شد بندگان مرا شبانه حرکت ده که شما تعقیب میشوید و تركن البحررهوا انهم جند مغرقون هنگامی که از دریا گذشتید دریا را آرام و گشاده بگذار و بگذر که آنها لشکری غرق شده خواهند بود من و عیون. سرانجام همگی نابود شدند و چه بسیار باغها و چشمها که از خود به جای گذاشتند و زروع و مقام کریم و زراعتها و قصرهای زیبا و گران قیمت و نعمت کانو و نعمتهای فراوان دیگر که در آن قرق بودن کذالک و اورثناها قوم آخرین این چونین بود ماجرای آنان و ما اموال و حکومت اینها را میراث برای اقوام دیگری قرار دادیم. فما بکت عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. نه آسمان بر آنان گریست و نه زمین و نه به آنها مهلتی داده شد. ولقد نَجَّيْنَا ذَنِيّ إِسْرَائِيلَ من الْعَذَابِ المهين. ما بنی اسرائیل را از عذاب زلتبار رهایی بخشیدیم من فرعون اینهو کان من المسرفین از فرعون که مردی متکبر و از اصرافکاران بود و لقد اخترناهم علی علم علی العالمین ما آنها را با علم خیش بر جهانیان برگزیدیم و برتری دادیم و آتینا من ما فیه مبین و آیاتی از قدرت خیش را به آنها دادیم که آزمایش آشکاری آن بود ولی آنان کفران کردند و مجازات شدند این ها اینها مشرکان میگویند این و مرگ ما جز همان مرگ اول نیست و هرگز برانگیخته نخواهیم شد اگر راست میگویید پدران ما را زنده کنید و بیاورید تا گواهی دهند ام قوم این هم آیا آنان بهترند یا قوم تبع و کسانی که پیش از آنها بودند ما آنان را هلاك کردیم چرا که مجرم بودند و ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لعبین ما آسمانها و زمین و آنچه را در میان این دو است به بازی نیافریدیم ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا یعلمون ما آن دو را جز به حق نیافریدیم ولی بیشتر آنان نمیدانند این روز جدایی حق از باطل وعدگاه همه آنهاست. یوم لا مولن عن مولا شیئا ولا هم ينصرون. روزی که هیچ دوستی کمترین کمکی به دوستش نمی‌کند. و از هیچ سوی یاری نمی‌شوند الا من رحم الله انه هو مگر کسی که خدا او را مورد رحمت قرار داده چرا که او عزیز و رحیم است ان شجره الزقوم مسلما درخت زقوم طعام از گناهکاران است. فی همانند فلز گداخته در شکم میجوشد. جوششی همچون آب سوزان. آنگاه به معموران دوزخ خطاب میشود این کافر مجرم را بگیرید. و به میان دوزخ پرتابش کنید فوق رأسه من عذاب سپس بر سر او از عذاب جوشان بریزید انت به او گفته می شود بچش که به پندار خود بسیار قدرتمند و محترم بودی این این همان چیزی است که پیوسته در آن تردید می کردید. این مقام ولی پرهیزگاران در جایگاه امنی قرار دارند. فی در میان باغ ها و چشمه ها یلبسون من سندس و استدرق متقابلین آنها لباس هایی از حریر نازک و زخیم می پوشند و در مقابل یک دیگر می نشینند ذ اینکه بهشتیان و آنها را با هورول عین تزویج میکنیم یا آنها در آنجا هر نومی به ایرا بخواهند در اختیارشان قرار میگیرد و در نهایت امنیت به سر میبرند. لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى و وقاموا عذاب الجحيم هرگز مرگی جز همان مرگ اول که در دنیا چشیدند نخواهند چشید و خداوند آنها را از عذاب دوزخ حفظ میکند صد لم من ربك ذلك هو الفوز العظيم این فضل و بخششی است از سوی پروردگارت این همان رستگاری بزرگ است بلسان ما آن قرآن را بر زبان تو آسان ساختیم شاید آنان متذکر شوند اما اگر نپذیرفتند منتظر باش آنها نیز منتظرند تو منتظر پیروزی الهی و آنها منتظر عذاب و شکست